بسم الله الرحمن الرحیم قصه ظهر جمعه یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود در روزگاران گذشته، در گوشه ای از این سرزمین پهناور خدا، پیرمردی زندگی میکرد پیرمرد آدم فقیر و دست به دهنی بود که از دار دنیا تنها سه پسر داشت و اما عزیزان از اونجایی که همه ما آدم ها روزی شکار مرگ میشیم پیرمرد هم روزی از روزها و نفس آخر رو کشید و به دیار باقی رفت چند روزی به سوگ و ماتم گذشت اما بعد از اون دو پسر اول به فکر چاره افتادند. به این ترتیب که شال و کلاه کردن و راه افتادن تا برن ببینن سرنوشت چی روی پیشونیشون نوشته و کجا میتونن یه لقمه نون گیر بیاره. پسر کوچیک دید با رفتن دو برادرش حسابی تنها میمونه، جلوه اونها رو گرفت و ازشون خواست که او رو هم با خودشون ببرن. از برادر کوچیک اصرار بود و از برادرهای بزرگ کار تا اینکه اونها بالاخره آب پاکی رو روی دستهای اون بیچاره ریختن و بهش گفتن ما تو رو با خودمون نمیبریم برای اینکه تو آدم بی دست و پای هستی و کاری از دستت بر نمیاد بنابراین و بال گردن ما میشی و باید شکم تو رو هم سیر کنیم اصلا تو رو چه به این کارها تو برو توی خاک رو بگرد بلکه یه چیزی پیدا کنی و با فروش اون بتونی زندگی کنی برادر کوچیک ناامید شد و دیگه چیزی نگفت و ما دو برادر راه افتادن و رفتن دو سه روزی این طرف و اون طرف گشتن تا اینکه بالاخره خودشون رو به کاخ شاه رسوندن و در اونجا کاری دست و پا کردند. یکیشون شد وردست کالسکیچی یا سورچی کاخ و یکی دیگه هم شد دستیار اون و, و ما بشنوید از پسر سوم که اسمش چکمه بود. چکمه وقتی دید دو برادر بزرگتر ولش کردن به امان خدا و بیکس و تنها مونده بیکار ننشست. تغار خمیرگیری گت و رو که تنها ارس و میراث پدر مادرش بود و دو برادر بزرگتر از خیرش گذشته بودن برداشت و راه افتاد. این تغار از اون تغارهای خیلی سنگین بود و پسره زورش نمیرسید اونو دنبال خودش بکشه. اما در این حال دلشم نمی اومد همین جور به امان خدا و ولش کنه و بره. برای همین به هر بدبختی و سختی که بود اونو کشید و کشید تا به دروازه کاخ رسید. درزد و شغل و کاری خواست آدم های کاخ اومدن و گفتن کاروباری نداریم که به درد تو بخوره برو به امان خدا اما آقا چکمه به خلاف نظر برادرش اونقدر هم پخمه و بی پا نبود او اونقدر همونجا ایستاد و آهوزاری کرد که بالاخره دل و توی کاخ سوخت و کاری تو آشپزخونه براش جور کردن کارش هم این بود که بره آب و هیزم بیاره و بده دست آشپز. شکم طرافرز و, و قبراق چسبید به کار و تولی هم نکشید که به سبب کردار و رفتار خوبش خودش رو تو دل همه جا کرد. بله، همه خاطرش رو میخواستن. جز همون دو برادر خودش که همون جور باهاش سرسنگین بودن و محلش نمی‌گذاشته. تازه وقتی دیدن با همه خوب تا میکنه و کارهاشو هم به خوبی انجام میده ترسیدن جای اونها رو تنگ کنه. و به همین علت حسادت مثل خوره به جونشون افتاد و تصمیم گرفتن ای بکشن و هر جور شده او رو از سر راهشون برداره. و اما عزیزان روبروی کاخ شاه ای بود و وسط این دریاچه دیوی زندگی میکرد که هفت تا مرغابی نقره ای داشت. مرغابی روزان روزا روی دریاچه و برای خودشون شنا میکردن به طوری که هرکی توی کاخ میستاد اونها رو به خوبی میدید. بله م چنان زیبا بودن که هر کس اونها رو میدید آرزو می کرد بتونه صاحبشون باشه و در این میون شاه هم که همیشه دوست داشت هر چیز زیبا مال او باشه آرزوی داشتن این مرغابی ها بد بر دلش نشسته بود ولی هیچکس کس تا اون وقت نتونسته بود آرزوی او را برآورده کنه هرچند حتی ادهی جونشون رو هم بر سر این کار گذاشته بودن و اما جونم براتون بگه دو برادر بعد وقتی از این قضیه بو بردن با خودشون گفتن حالا وقت اجرای نقشه است بنابراین اومدن پیش سورچی و گفتن حیفه که شاه بزرگ ما در آرزوی چند مرغابی روزها و شب رو به سر بیاره تو که به او دسترسی داری برو بهش بگو که برادر ما میتونه آرزوشو برآورده کنه او خودش به ما گفت که اگه بهش اجازه داده بشه مثل آب خوردن میتونه بره و اون هفت مرغابی نقره ای رو بگیره و برای شاه بیاره سورچیه کاخ تا این حرف رو شنید شتابان نزد شاه رفت و قضیه رو براش تعریف کرد. شاه که از این خبر حسابی به وجد اومده بود زود چکمه رو نزد خودش خواست و گفت برادرات گفتن تو میتونی بری اون مرغابی های ای رو بگیری و بیاری پس زود باش برو و این کار رو انجام بده. ولی بله یاران جوان تو تنگنای بدی افتاده بود ولی جرعت نگفتن به شاه رو هم نداشت. برای همین گفت باشه حالا که دستوره اطاعت میکنه. منتها فرمان بدید یه پیمان ارزن و یه پیمان گندم به من بدن تا برم ببینم چه میتونم بکنم. القصه جوان ارزن و گندم رو گرفت اونها رو گذاشت تو تغاری که از خونه آورده بود و خودش هم نشست توی همون تغار رو شروع کرد به پارو زدن به اون طرف دریاچه که رسید پیاده شد و کنار آب به راه افتاد و همینجور که راه میرفت ارزن و گندم ها رو کم کم پاشید تا اینکه همه مرغابی ها رو دنبال خودش کشند و آورد توی طقار و بعدم مثل باد پارو زد و برگشت و اما وسط های راه بود که دیو از لونش بیرون اومد و چشمش به او افتاد و نعره کشید آهای مرغابی های منو تو گرفتی؟ جوون گفت بله دیو گفت زود که بر می گردی. جوون گفت نمیدونم شاید برگردم و بعد از این حرف به راهش ادعا مداد جوون برگشت و هفت تا مرغابی ای رو تحویل شاه داد و همین باعث شد تا کلی احترام به دست بیاره و پیش شاه عزیز بشه اما دو برادر بزرگتر اینها رو که دیدن حسابی ناراحت شدن و تصمیم گرفتن دوباره ای بکشن بلکه این بار او رو به زمین بکوبن این بود که باز راه افتادن و پیش سورچی رفتن و دروغ سر سرهم کردن و گفتن برادر ما میگه که اگه شاه بخواد اون آمادگی اینو داره که بره لحاف دیو رو هم برداره بیاره. و ما عزیزان لحاف دیو از اون لحافهای چلتکه بود که تک تکه از طلا و نقره به هم بافته شده بود. بگذریم. کالس که چی معطل نکرد. دون دوون پیش شاه اومد و سیر تا پیاز قضیه رو برای او تعریف کرد. شاه که از مدت ها پیش درش میخواست لحاف گرانبه های دیو رو به دست بیاره گل از گلش شکفت زود جوان رو صدا زد و گفت برادرات گفتن که تو جربزش رو داری که بری لحاف دیو رو برداری بیاری همون لحاف چل تکیه تلاو رو میگم پس معتل نکن زود راه بیفت و برو بیارش بیچاره چکمه هرچی بالا رفت و پایین اومد که بابا والا بلا من همچین حرفی نزدم دید فایده نداره و گوش شاه به این حرف ها بدهکار نیست. ناچار خواهش کرد سه روز به او محلت بدن تا بره و راه چاره ای پیدا کنه. الغرز سه روز که سر اومد چکمه رفت تقار خمیر رو برداشت و نشست تو اون شروع کرد به پارو زدن. بله او رفت که سر و آب بده و ببینه اوزا از چه قراره. اما در این حال که چکمه غار دیو رو زیر نظر گرفته بود متوجه شد که چند تا دیو کوچیک از توی غار بیرون اومدن و لحاف دیو رو آوردن و آویزون کردن تا باد بخوره همین که برگشتن برن تو غار چکمه معطل نکرد و فرز پرید و لحاف رو کشید پایین و گذاشت تو طغار و مثل برق و باد پارو زد و برگشت وسطای راه بود که دیو از پناکهاش در اومد و نعره کشید آی تو همون نیستی که هفتا مرغابی منو گرفتی بردی؟ جوون گفت چرا؟ خودمم و حالا هم لحاف چهل تکه منو برداشتی بری؟ درسته؟ جوون گفت بله همینطوره دیو گفت ببینم زود که بر میگردی؟ جوون گفت شاید برگردم خلاصه وقتی جوون با اون لحاف چهل تکه به کاخ برگشت دیگه همه یک دل نه سد دل شیفته و هوا او شده و بالاخره هم شاه به پاس این کار او رو محافظ خودش کرد دو برادر وقتی از این قضیه آگاه شدن کفرشون در اومد و برای اینکه دغدغ دلشون رو خالی کنن زود رفتن پیش سورچی و گفتن شما که هنوز از هنرهای بی‌شمار برادر ما خبرید مثلا اون میگه اگه شاه اجازه بده من دلشو دارم که برم چنگ طلای دیو رو بردارم بیاره و ما دوستان این چنگ از اون چنگ هایی بود که هرکی به آهنگ اون گوش می‌کرد، هر هرچه غم و غصه تو دلش بود بیرون میرفت و به قول معروف گل از گلش می شه کفت. باری باز سورچی به دو به دو پیش شاه رفت و قضیه رو تعریف کرد بعدشم شاه جوان رو صدا زد و حکایت رو براش تعریف کرد و ازش خواست که هر چه زودتر به حرفش جامعه عمل بپوشونه جوون که دید باز برادراش کار خودشون رو کردن و دوباره او رو توی دام انداختن گفت بسیار خوب من چنگ تلایی دیو رو هم براتون میارم فقط برای این کار شش روز فرصت میخوام تا بتونم مقدمات سفرم رو آماده کنم. شاه پذیرفت و جوون به دنبال کار خودش رو و اما در پایان روز ششم جوون یه دونه میخ یه ترکه نازک درخت و یه تکه شمع مومی با خودش برداشت و نشست تو و, و رفت جلوی در غار دیو پیاده شد. در اونجا شروع کرد به قدم زدن و بالا و پایین رفتن و البته در همون حال دور و برش رو میپایید تا ببینه اوزا از چه قراره. و در این حال یه دفعه دیو از غار بیرون اومد و چشمش افتاد به او. او رشی کرد و گفت آی. تو همونی هستی که هفتا مرغابی نقره منو بردی جوان که از دروغ بیزار بود گفت بله دیو پرسید ببینم لحاف چهل تکه تلاو و نقره دوزی منو هم تو بردی جوان جواب داد بله اونم من برده و دیف تا این رو شنید زود چنگ انداخت و پس گردن جوان رو گرفت و انداختش توی قاری که در دل سخره کنده شده بود بعدم فریاد کشید یا دختر اون کسی که مرغابی های ای و لحاف چلتکه و نقرعی من برده بود گرفتمش ببر حسابی بهش رسیدگی کن تا خوب که پروار شد سرشو ببریم و یه سور جانانه از گوشتش بدیم دختر دیف هم از خدا خواسته فوری جوانک رو برداشت برد و انداخت توی آغل پروار بندیم جوان هفت روزی توی آقل خرد و خابید و حسابی چاق شد روز هشتم دیو به دخترش گفت زود برای یه تکه از گوشت انگشت کوچیک جوان رو ببر بیار ببینم چاق شده یا نه دختر دیو رفت تو آقل و گفت آهای جوان انگوشت کوچیکت رو درار ببینم چکمه تا این حرف رو شنید نوک میخ رو از در آقل بیرون داد و دختر اونو گرفت و برد. پیش پدرش که برگشت گفت اوه, اوه گوشتش که گوشت نیست اینه او آهن سفته نه هنوز قابل خوردن نیست دیو گفت بسیار خوب بازم می میکنیم تا او چاق بشه باری هشت روز دیگه هم گذشت و باز همین اتفاق تکرار شد با این تفاوت که این بار جوان یه تکه از ترکه درخت رو از در آغول بیرون داد دختر دیو پیش پدرش برگشت و گفت همچین بفهمی نفهمی گوشتش یکم بهتر شده ولی هنوز کو تا خوردنی بشه ای نهو چوب خشک خشکه دیو باز دن روزیگر گذاشت و به این ترتیب هشت روز دیگه هم سپری شد در این هنگام بود که دیو به دخترش گفت برو ببین حالا چاق و خوشخوراک شده یا نه؟ دختر دیو بیدرنگ رفت دم در آقل و گفت آهای انگشت کوچیک تو در ببینم و چکمه هم این بار تهشم مومی رو بیرون داد. دختر تهشم رو گرفت و آورد پیش پدرش و گفت حالا خوب شده. حالا دیگه قابل خوردنه. دیو خنده کرد و گفت به به. خیلی خوب شد پس من همین حالا راه میافتم و میرم قوم و اونو دعوت میکنم تا بیان اینجا تو هم تا من برگردم حساب اونو برس سرشو ببر نصف گوشتش رو آب گوشت بذار و نصف دیگهشو هم بذار تا سرخ بشه چه درد سرتون بدم دوستان دیوه که رفت بیرون دختر یه چاغوی خیلی بزرگ برداشت و رفت سراغ جوون و گفت آماده باش که میخوام سرتو تو ببرم جوون نگاهی به چاقو انداخت و گفت ولی چاقوی به این کندی ماست رو نمیبره چه برسه سر منو دختر گفت خب پس چکار کنم ما همین یه چاقو رو بیشتر نداریم بنابراین باید با همینم کارمون رو انجام بدیم پسر گفت ایراد نداره تو کارتو بکن ولی پیش از اون چاقو رو بده تا من برات تیز کنم اینجوری کارت زودتر راه میافته دختر دیو که مشتاق بود هرچه زودتر فرمان پدرش رو اجرا کنه زود چاقو رو به دست پسر داد جوون دست بکار شد و تون تون چاقو رو رو سنگ زبری که توی آقل قرار داشت مالید دقایقی که گذشت دختر دیو حوصلش سر رفت و گفت بی خود منو معطل نکن بگو بدونم چاقو تیز شده یا نه جوون گفت گمون نمی کنم کاملا تیز شده باشی اما که دختر حرف او رو قطع کرد و گفت. اشکال نداره، بده روی چند تا موت امتحان کنم ببینم تیز شده یا نه چون به گمون من دیگه باید تیز شده باشه باری، پسره یه تار موش رو گرفت و آورد جلو اما تا دختر دیو مچاقو رو بگیره پسر دختر رو گرفت و کشید عقب و با یک ضرب سرش رو از تن جدا کرد و اما دوستان از اونجایی که جوان گفتگوی دیو و دخترش رو در مورد درست کردن غذا شنیده بود نصف گوشت دختر رو آبگوشت بار کرد و نصفش رو هم سرخ کرد و گذاشت توی سفره و ما چیزی نگذاشت که دیو و مهموناش اومدن و سر سفره نشستن و بنا کردن به غذا خوردن لحظاتی که گذشت دیو دخترش رو صدا کرد تا او هم بیاد و یه لغم غذا بخوره چون در تمام این مدت خیال میکرد اونی که در گوشه‌ای نشسته و خودش رو جمع و جور کرده دخترشه پسر صداشو نازک کرد و گفت من میل به غذا ندارم دلم خیلی گرفته غمگینم دیو گفت اینکه این که نداره چارش دست خودته پاشو چنگو بردار یکم بزن دلت باز میشه جوان گفت باشه ولی اون کجاست من که نمیدونم کجا گذاشتیش دیو گفت چی داری میگی دفعه آخر دست خودت بود یادت رفته گذاشتیش پشت در بله عزیزان و تا این حرف از دهن دیو بیرون اومد جوون فوری پرید رفت چنگ رو برداشت و شروع کرد به زدن و همینجورم هم که ساز میزد و خودش رو تكرون میداد و میرفت بیرون غار و میومد ی دفعه تقار خمیر رو سر داد و انداخت توی آب و پرید توش و تند تند بنا کرد به پارو زدن چند دقیقه که گذشت و دیو دید دخترش مدتی رفته بیرون و خبری ازش نیست دلنگران شد برای همین رفت بیرون ببینه چه خبره و چه اتفاقی افتاده اما دوستان دیو به جای اینکه دخترش رو پیدا کنه دید جوون نشسته تو توغار و وسط دریاچه داره پارو میزنه و میره در این هنگام دیو نعره کشید آی تو همونی که هفت تا مرغابی نقره منو بردی جوون گفت بله دیو با خش پرسید همونی که لحاف چهل تکیه زرنگار منو بردی؟ جوون گفت بله دیو که داشت دیوونه میشد شد به هوا و رفت و گفت و حالا هم چنگ تلای منو برداشتی که ببری؟ ها؟ جوون پاسخ داد بله که برداشتم پس چی؟ دیو گفت ای بابا پس اونی که من خوردم تو نبودی؟ جوون گفت نه که نبودم میبینی که من سالم و سر حالم تو گوشت تن دختر خودتو خوردی؟ بله و دیف تا این رو شنید آه بلندی کشید و از غصه دق کرد و مرد اون وقت چکمه پاروزنان برگشت و قدری صبر کرد تا مهمون ها رفتن و تا تغارجا داشت توی اون کیسه های و نقره ریخت و بعدم دوباره برگشت به طرف کاخ و ما به کاخ که رسید بنابرای قولی که شاه به او داده بود با دختر او عروسی کرد و حکومت نیمی از اون سرزمین رو هم گرفت. بعدش رو خلاصه کنم و سرتون رو درد نمیاره. برادرها که چنین دیدن، اومدن پیشش و به خاک افتادن و ازش خواستن که از سر تقصیراتشون بگذره و مجازاتشون نکنه. جوون لبخندی زد و گفت: لازم به این کارها نیست. من هیچگاه در پی کینه کشی از شما نبودم. چون میدونم آدمای مثل شما که دست به چنین کارهایی میزنن، افرادی بیچاره و بدبخت و قابل ترحم‌اند. پس برید و به کارتون برسید و دیگه به اندیشه بد کردن به دیگران نباشید بله عزیزان و چه خوب گفته شاعر که هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنید